الان دمدمای غروب است چرا فقط امروز باید توی خیابان فرعی من ترافیک باشد حامد میخواهم تا شب نشده ببینمت ناگهان راه خیابان فرعی باز میشود جهان دارد با من راه میآید معجزه هنوز هم اتفاق میافتد. ده سال پیش هم راه ناگهانی باز شده بود خیابان میرداماد با آن درخت لخت دو طرف و مغازه های روشنش برای من قرخ شده بود. پیکان آبی رنگ میدان مادر را دور زد و سر خیابان بهروز نگه داشت. میخواستم آنچنگ کوچه را پیاده بروم تا استرابم بنشیند و به خودم مسلط شوم. حامد بعد از ده سال همه ی شهر. در همان چند دقیقه ی راه تا گالری، حامد و مادر جان و مجید و پدر بزرگ و هزار تا آدم ریز و درشت دیگر از جلوی چشم هام رد میشدند. گالری طبقه سوم یک مجتمع تازه ساز بود. با دل هوره از پله ها بالا رفتم. جلوی در گالری روی بومی که خودش روی سپایه نقاشی بود، پستر نمایشگاه را چسبانده بودند. کنار سپایه میزی چوبی بود که رویان بروشور نمایشگاه و شیرنی گردوی و لیوانایی یک بار مصرف کاغذی برای نسکا چیده بودند. گالری شلوغ بود، چهرهای آشنای اکاسان معروف پایتخت؟ استادان اتو کشیده هنرهای زیبا، جمع بزرگان. اینها را حامد از کجا پیدا کرده؟ مگر حامد چند وقت است آمده ایران؟ لیلا، هنوز هم دیر نشده، برگردی بهتر است. شاید روی پاشنه پام چرخیده بودم و طرف در هم برگشته بودم که مردی با موهای کوتاه و عینه که طبیه بیفرهیم روبرویم سبز شده بود جو دست گل قشنگ خانم جاهد خوشگم زده بود حامد تویی هر دو خودمان را نگه داشتیم که جلوی آن همه چشم باز توی بقل هم نپریم نمیخواستم احمق نشان بدهم اما عین احمقها دستپاچه بودم مادرت هم آمده سرش را خندان و متعجب و علامت نتکان داد. میروم رویم را رو ببینم. کوها و دشتهای نزدیک تهران. تهران این همه جای بکر داشته و خبر نداشته. اینجا کجاست؟ زیرش نوشته داراباد. گلاب دره. دشت خور. سنگان. آمده بودم حامد را ببینم یا اکسهاش را. دلم برای با حامد بودن پر میزد انگار حامد هم مثل من بیتاب بود. به دقیقه نکشید که مهمانهای تازه آمده ی را دک کرد و آمد سمت من. خانم جاهد، ما یلید برویم دفتر گالری با هم صحبت کنیم؟ لفظ قلم و رسمی و اصاقورت داده بود. مگر تو همان حامد نجات نیستی که به من نامه مینوشتی نامهها تا آنجا که یادم است صمیمانه و عاشقانه بود اینها را با خودم گفته بودم مایلا حامد مهمانهای افتتاحیه را گذاشته بود به حال خودشان با هم رفتیم توی دفتر گالری در راهم بستیم امروز روز افتتاحیه نمایشگاهتان است میخواهید بگذاریم فرصتی مناسبتر آقای نجات؟ حالیت می کنم تا دیگر با من لفظ قلم حرف نزنی حامد چیریکم را گرفت به خیال نمایشگاه خودت خوبی معلوم است که خوبم از خوبم خوبترم. تو خوبی؟ بلندی های شهر چه میگویند؟ تو کجا و اینجا کجا؟ مملکت از ما بهتران بهت نساخت. چقدر عوض شده ای لیلا. زندگی آدم را عوض می کند حامد. اینقدر لیلا. همینقدر حامد. تو تعریف کن چقدر. حامد گفته بود سه سال است آمده ایران. سال هفتاد و سه پدر و مادرش با ماشین دوستشان توی جاده دماوند با یک کامیون تصادف میکنند پدرش در جا میمیرد و مادرش میرود توی کما. با خبر که میشود بلا فاصله و باز با پرواز استانبول میآید تهران. کمای مادرجان طولانی میشود و حامد با آنکه کم کم داشته در نیویورک جا میفتاده و با یک گالری معروف هم به توافق رسیده بوده توی تهران ماندنی میشود. بیشتر وقتش پای تخت بیمارستان میگذشته. مادرجان سال پیش از نماشکا فوت کرده بوده. و کنار مزار پدر خاکش کرده بودند. بعد از فوت مادرجان حال حامد خیلی بد بوده و فکر میکرده همه چیز را باخته تا آنکه با اتفاقی جالب دوباره به چرخه زندگی برگشته بود. برای عکاسی انگیزه پیدا کرده بود و به سرعت با محافل هنری تهران جفت و جور شده بود. آن نمایشگاه هم سره آن یک سال بود. دو سالی که مادرجان توی کما بود، حامد از راه تدریس زبان زندگیش را را و حالا فهمیده بود معلم خوبی است و اگر عکاسی دست از سرش بردارد میخواهد انگلیسی تدریس کند. من هم برایش از مجید و بچه و هنرهای زیبا گفته بودم. نمایشکا نیم ساعت دیگر تمام می شود اگر منتظر بمانی می و توی راه با هم حرف میزنیم. منتظر می مانم. نماشگاه تمام شده بود و سوار ماشین حامد شده بودم نزدیک خانه حامد خواسته بود دستم را بگیرد ولی من دستهام را پس کشیده بودم نه حامد و از آن وقت تا قبل از عمل قلب شما دو دوست افلاتونی بودید و هر کی به ظاهر سرگرم کار خودش صدای زنگ در توی گوشم میپیچد حامد است. کاما، در را خودم باز می کنم. هزار دفعه گفتم وقتی از اتاق بیرون میایی شلوار پات کن. نکند حامد چند بار زنگ زده باشد و من نشنیدم و توی فکر و خیالات خودم بودم. آمدم حامد جان. معلوم است که صدام را از جلوی ورودی پایین نمی پاک زده به سرم. کاما برو توی اتاقت یا ما را هم بیدار نکن. از آیفون تصویری حامد را میبینم. سر به سرش میگذارم. کیه؟ حامد هم پایه بازی است. بچه ها منم مادرتان. اگر راست میگوی از را نشان بده ببینم تصادفا آقا گرگه نیستی. در را باز کن لیلا. توی این سرما توی سر گرگ هم بزنی از لانش بیرون نمیآید بیا بالا عزیز دلم عزیز دلم چه عبارت قشنگی است در را نرسیده برایش باز میکنم دستم را به کمر میزنم و جلوی درب میایستم میخواهم لحنم در حالی که آشقانه است طلبكارانه هم باشد و به حامد نیامده و لبتر نکرده بگویم بنشیند روی صندلی رکینگ و من چراغ سقفی را پایین بیاورم و عین های بازجویی از حامد بازجویی کنم دلم برای حامد بیچاره میسوزد به جای این ادا های مسخره، بهتر از قهوه جوش را روشن کنم و کنار در نیمه باز خانم به تا حامد که از آسانسور در می آید، را از تنش در بیاورم و آویزان کنم به جالبازی. یادم رفته چراخها را روشن کنم. خانم شده این خانه ارواه. چراخها را روشن کن زن، مردت دارد از سفر می آید. این یکی دو ساعتی که از تماسد با حامد گذشته تو هم رفته بودی سفر. سفری درونی. هیچ وقت فکر میکردی بشود 20 سال را در کمتر از یک ساعت فشارده کرد و حتی یک روز را هم همجا نینداخت. این نداست که دارد هی تو را از زمان حال به گذشته می برد. این نداست که زمان و صرف افعال را برایت مشکل کرده. نمیدانی باید با چه زبانی با حامد حرف بزنی. احساس می زبانهای دنیا وقتی حامد از آسانسور بیرون میآید و در آستانه در ظاهر می شود، از کار می و منقرض میشوند. برای نفوذ کردن در حامد باید غیر از تکلم راه دیگری پیدا کنی. حامد خودش اینجور حرف زدن را به تو یاد داده با چیزهایی که دوست داری حرف بزن. حالا باید دنبال زبانی جدید باشی. ندا دستور زبانی جدید میخواهد برای توی دهانتو نشستن. حامد از آسانسور میآید بیرون. میدانی چرا؟ ولی خودت را لوس می کنی. حامد، یکم دیر نکردی؟ یاد کوچه بند آمده از قطار ماشین ها می افته و کاما که توی خیالت داشت با قطار برقی و ماشین کنترلیش بازی میکرد به خدا به موقع رسیدم. ولی مجبور شدم توی همون کوچه اول پارک کنم. نمیتوانستم ماشین را جلوتر بیاورم. برم. چیزی میخوری؟ نه فعلا. چرا توی این سرما پنجره ها را بازگذاشته ای؟ بودو لیلا، زود باش بهش بگو که دوباره داری بچه دار میشوی. جنین بیست سال هم عاشق شما شده آقای عکاس. مراعات قلب ناسور ما را بکنید آقای عکاس. چرا هوای قلبم را ندارید آقای عکاس؟ نه اینجوری نگو. بگو من به تو اعتماد دارم. من به تو ایمان دارم. دخترهای این نسبی مبالاتند و بی‌احتیاط. حامد، شاگرد اول کلاس زبانت مهر تو را به دل گرفته. نپرس چرا من دارم این را به تو میگویم. 20 سال کممان نیست که دیگر نخواهیم دردسر درست بکنیم. و ماجره جدید را به پشت همه ماجره های این سال ها؟ هم نه؟ چرا مثل آن شب که چراغ خواهی ماشین را خاموش کردی لالمانی گرفته لیلا؟ شیش های ماشین بالا بودند، بخاری روشن بود، ولی تو هنوز سردت بود. ندا سرش را از روی شانت برداشت. ببخشید، نمیخواستم شبتان را خراب کنم، دست خودم نبود. زد به سرم. نمی توانستم توی خودم بریسم میخواستی حرف نداره قطع کنی و بگویی میدانی منو و حامد ولی لالمانی گرفته بودی دلم برای ندا میسخت اما ادای کلمات منطقی برایم ناممکن شده بود تازه با کلمات منطقی چه می توانستم بگویم میگفتم دل بستم به جماعت هنری بیعقلی است حامد یعنی پایین نه این دروغ بود. می گفتم میس جدیه بود. حامد جرویس پندلتون نیست. برای اینکه تو از نوانخانه جنگریر نیمده ای. نداروی کدام دیوارسایی بابا لندراز عکاسش رو دیده بود. حرفای منطقی گفتن ندارد. نداروی فقط می خواست بزند به سرش و صد به سرش. آن شب شب دیوانگی بود. اما حامد چی؟ نمی توانم پار روی حس مادرانم در آنم بگذارم. حامد، تو باید با ندا حرف بزنی. حامد، سکوت یعنی جنایت عاطفی هیچ وقت نمیخوام وقتی که با هم زندگی می کنیم سکوت کنی. حامد، قصه من و تو را باید غیر از خودمان دیگران هم بدانند. نه فقط ندا. تا حالا مثلا به سامان از گذشته چیزی گفته ای؟ به خدا نه حامد همین است که مشکل میتراشد حامد حرف بزن وقتی از چیزی بو میبری بو بکش و به منبع بو برس و الا همه میتوانم با دو انگشت دماغشان را بگیرند تو که به شامت خیلی اعتماد داری پنجره را همین چند دقیقه پیش باز کردم الان میبندمش بنشین خودم میبندم لیلا چی شد یک دفعه ساکت شدی؟ هیچی یعنی راستش ندا ندا؟ ندا چی؟ علیکی گفتم کاما خواستم سر به سرت بگذارم من اصلا حرف مهمی با حامد ندارم یعنی دارم ولی کلمات نمیآیند آیند. می توانید از اتاقتان بیایید بیرون. امشب می رویم بیرون. شام می خوریم و را فراموش می کنیم. فرزند کمتر زندگی بهتر. کاما، یاما، زبانتان را گنجشک خورده؟ چرا به بابایی سلام نمی کنید؟ اشکالی ندارد. چون زبان خودم را هم گنجشک خورده. یاما، خوب نیست بچه اینقدر بخوابد. دکترا اشتباه تشخیص دادن. من باردار نیستم و شما خواهردار نمیشوید. کاما، برو جبه باغ الف را بیاور. من هم باید تمرین کنم تا بتوانم کلمه بسازم. این بابا لنگ دراز گیج از همه جا خبر را کی میخواهد مجاب کند؟ کار حضرت فیل است. با غلف، با لغات، حروف، راحت راحتم بگذارید. لیلا، مسیر صحبت را عوض کن. حس مادری یک حس موقت مسخر است و نباید بهش اعتماد کنی. ندا توی ماشین تو گریه کرد و تو او رو به خانهشان رساندی اتفاقات کوچکی افتاد و همه چیز هم همان شب تمام شد. تو چیزی نشنیدی. عشقایی نداره که آرایشش را به هم ریخته بود ندیدی. تنها آدم زندگی تو حامد است. خیلی چیزها هست که باید از این گوش بشنوی و از اون گوش کنی. نداد چی لیلا؟ هیچی حامد، امشب برویم پیاده حامد به تابلوی بزرگ توی حال نگاه می کند. است که خودش از من انداخته. کاش که احساس کند که جای خودش در اکس خالیست و حقش بوده دوربین را رو روی اتومات میگذاشته و می بغل دست من می استاده. حامد جان چه توی عکس باشی چه نباشی من لیلا جاهد چهل سالی تو هم. لیلا جاهده بیست ساله تو و دیگر حتی نمیخواهم بچه دار بشوم همین کاما و یاما را هم میتوانیم بگذاریم توی یک سبت و جلوی در همسایه ها بگذاریم می توانیم بدهیمشان به پرورشگاه و خودمان برویم هر جا که تو می گویی. دماوند یا همه ی بلندی های شهر پرسیدم نداد چی لیلا؟ خیر، مادری حسی موقت و مسخره نیست چه بخواهم چه نخواهم من مادرم فضای بسته خانه الف و دستور زبان آدم را از کار می اندازد. در خیابان که راه بروم کلماتم زنده میشوند خیابان زبانهای در حال انقراز را دوباره زنده می کند. بیا برویم بیرون قدم بزنیم و برایت بگویم که ندا چی؟ حامد از روی سندلی رکینگ بلند می‌شود. صندلی به عقب جلو شدنش ادامه می‌دهد. کاپشن حامد رو توی دستم می‌گیرم و به حامد اشاره می‌کنم که بیاید کاپشنش رو بپوشد. حامد بیان که حرفی بزند، میآید پیش من. سکوتت رو دوست دارم مرد من. فقط این بار سکوتت رو بشکن مرد من. با ندا شاگرد اول کلا سبانت حرف بزن مرد من. دست حامد را محکم میگیرم دستش سرد است. ولی این بار مثل هرباری که چیزی سرد بدنم را لمس میکند یاد ژلی که قبل از اکوب شکم آدم می مالن و وحشت برم نمی دارد. توی سرمایه دستهای های حامد فرو بروم. کجا <تصفيق> <تصفيق> برویم؟ با یه قهوه داغ چطوری؟ یا حتی شام. اگر کافه های گانی باشد قبول امشب بیخیال خیال قهوه پر از کافئین معرک قلب. میخواهم سردم بشود. اینقدر سرد که به بازوهای حامد بچسبم پیاده روی توی سرما حرف زدن درباره آینده حامد. من دارم بچه دار می شوم. بیا به جای آسانسور از راه پله برفیم، همه چیز باید امشب بیشتر طول بکشم